بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به مهربان نهایت با رحم آیا به تو داستان قیامت یعنی مصیبت فراگیر رسیده است؟ چهره است در آن روز که گرد خواری آن نشسته رنج کشیده بسیار مهنت دیده که در آتش سوزان می و از چشمه داغی جوشان نشانیده می شوش. برایشان طعامی نیست مگر زریع که نه چاق میکند و نه هم گرسنگی را برطرف می سازد چهره های دیگر است در آن روز شاداب و مرفه خورسند از کوشش خیش در بهشت برین که در آن سخن بیهوده نمی شنوند در آن چشمه است روان در آن تخت بلندی قرار دارد و جامهای های نهاده شده بالشهای ردیف شده است و فرشهای فاخر گسترده شده ای. آیا به اشتر نمی نگرند که چطور آفریده شده و به آسمان که چطور بلند شده است و به کوهای که چگونه پا بر جای و استوار برافراشته شده اند و به زمین که چگونه گسترده شده است پس پند بدی زیرا واقعا تو پندهنده ای تو بر ایشان مسلط نیستی مگر کسی که رو گردانید و کافر شد پس خداوند او را به بزرگترین عذاب مجازات می کند بیگمان باز گشت ایشان به سوی ماست و باز حسابشان بر ماست